رخداد نادرستی نظریهای های نژادی، هویت تاریخی ایرانیان از دیدگاه انسان شناسی بانو و یاد یگان آفرینگار و و پروردگار هستی با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان و همراهان صدای امید قسمت دوم برنامه رخداد رو در خدمت شما هستیم در قسمت گذشته جناب آقای ایران مهر اما دل که خاطرتون باشه و خاطر شنوندگان محترم باشه ما گریزی زدیم یه مقدمی ارث کردیم در مورد نجات، دقدقه هایی که داریم برای این برنامه خب ولی توفیق اجباری شد که در مورد هستی شروع کنیم و اون بله. نظریاتی که در مورد هستی مطرح شده و ما گریز دادیم به این مسئله ستارگان و کهکشان هایی که در حدود 15 میلیارد سال گذشته شک گرفته و نورشون به ما رسید و تقریبا در واقع ما تونستیم بشر تونستن اونها رو شمارش بکنه ما جوان میگیم آقا دکتر شما میخواین از تکامل انسان شروع کنیم بل. رفتین ماشاءالله از بل. تکامل هستی هستی هیچ ادم کلی از نوت فهم نیست بالاخره نه رو بالاخره به وجد میاره که بره حداقل یه سرچی تو اینترنت بکنه و بالاخره با این مسئله آشنا هم نه بشه خوب دوستان ما جوانان کشورمون یه سرشون رو از تو وایبر و این چیزا در بیارن بعد از مسائل علمی خیلی خوبه بله خواهش می‌کنم خواهش می‌کنم بوزو بنشین ارسه بود که جناب ایران مهر گرامی بحث موفه کنم رسید به تعریف سال نوری بله, بله بله من سال نوری رو خدمت دوستان تعریف کنم چون فواصلی که در کیهان ما داریم میان سیارات ها سیارات خیلی مهم نیستش چون فاصله ها کم هست میان ستاری رو معمولاً با سال نوری محاسبه میکنن حالا این سال نوری چی هست؟ سال نوری مسافتی هست که نور در یک سال طی میکنه. سرعت نور حد نهایی سرعت ها هستش ما بالاتر از نور هیچ سرعتی نداریم یعنی تمام ساخته های دست بشر و تمام اون ماشین یا هر چیز دیگه ای هر ماده ای به بالاترین سرعت هم برسه با از سرعت نور بالاتر نمیتونه برسه چون در حالتی که نور از سرعت نور بیشتر بشه در ماده با... تبدیل به انرژی بس. میشه بله ماده تبدیل به انرژی میشه دیگه خود ماده وجود ماده به و... اون حالت طبیعیش از دست میده بله یعنی ماده ای که یه ای توش هست الکترون های دور اون هستند این فاصله الکترون ها اگر پروتون ها و با اون هست هسته به چسبه دیگه انرژی اصلا همین انرژی هسته ای هم چیزش همینه بله. فلسفهش هم آزاد همینه آز آزاد شدن انرژی داخل هسته ای اتم هستش این کاملا به طور کامل از بین بیره نور در سانیه در یک سانیه سی سد هزار کلومتر تقریبا حالا چیز حدود یک سدومه درزه یک کسری داره بله. ق... کمتر از اینه. حدود سی سد هزار کیلومتر در سانیه حرکت میکنه حالا این مسافت ها رو من یه تا مسافت دوستان بگم این مسافت دستشون بیاد استن یعنی چی سی ست هزار کیلومتر کل در واقع محیط کره زمین محیط هم چون زمین یه کره است استن استوا که در واقع بالاترین خط در میانه در واقع خطهای ارضی کره زمین از چهله هزار کیلومتر یعنی یه چیزی هزار کیلومتر یعنی چی یعنی حدود چند بار دور کره دور... زمین در هر ثانیه؟ جر... یک ثانیه چند بار دور زمین گشتن؟ این یعنی سرعت بسیار سرسام آور. فاصله کره زمین تا کره ماه یه چیزی حدود 375000 کیلومتر. دقیقاً هزار کیلومتر، سی و هفتاد و پنج هزار کیلومتره. یعنی نور در عرض یک ثانیه و خورده‌ای بله از کره زمین میتونه به کره ماه برسه. مثلا فاصله طبیعی بین کره زمین تا خورشید 8 دقیقه 8 نوری... دقیقه و 20 ثانیه ب... یعنی 150 میلیون کیلومتر فاصله است یعنی نور 8 دقیقه و 20 ثانیه طول میکشه که از خورشید به ما برسه لذا سال نوری یعنی اینکه نور تو یک سال اون مسافت رو طی میکنه. شما حساب بکنید یک سال 365 روزه هر روز 24 ساعته هر ساعت 60 دقیقه است هر دقیقه 60 ثانیه است یعنی هر ثانیه یه چقدر سال یه چیزی حدود 32 میلیون سانی است بله یعنی نور در طول یک سال 960 تریلیون کیلومتر فاصله رو तय کنی یعنی یک سال نوری یعنی 960 تریلیون کیلومتر 960 هزار میلیارد کیلومتر رقمی که واقعاً بسیار سرسام‌آور هستش برای ما موجودات زمینی در که این ابعاد چون با عباد زمینی عادت داریم خب بله دیگه تو مغز ما یک نادرد گندش برای امسال ماهایی که مثلا تو آپارتمون 40 متری زندگی <تصفح> می کنیم و خیلی رقم بسیار کوچیک و خیلی اینجرا ارقم بسیار سازما و سردرد آور هستش عرض کردم که قطر یعنی از یک سمت کهکشانی که, که ما توش زندگی می که اکشار تا ها اونست هم 150 هزار سال نوری شما حساب کنید 150 هزار رو رع در 960 تیریون کیلومتر بکنید انقدر بسیار رقم وحشتناک میشه آقای دکتر منظومه ما منظومه خورشیدی ما آره تو با... جایی که من از تو کتاب فیزیک یادمی در فاصله سی هزار سال نوری از لبه کهکشان ما دقیقا قرار داریم قرار دارم. س... سی هزار سال نوری بقید. عرض به حضورتون که حالا من یه چیز دیگه هم خدمت شما و شما از ارز کنم که حالا این منظومه که توش زندگی میکنیم کره زمینی که دوره یک ستاره‌ای به اسم خورشید میچرخه و ماهی حیات ماست. یعنی خورشید نبود، سن حیات... حیاتی نبود، حیاتی در کار نبود. خورشید می‌که ستاره از 500 میلیارد ستاره این کهکشان هست. نزدیکترین ستاره به خورشید ستاره ای است به اسم قنطورس بر الфа قنطورس. بر الфа قنطورس که چهار سال نوری با کره زمین فاصله داره. یعنی شما درون خود کهکشان بله. ما. در دنیا خود چه نزدیکترین ستاره؟ به. یعنی نور چهار سال طول میکشه فقط به اون برسه حالا فواصل دیگر فواصل کوچیکتر رو شما حساب میکنید امواج هم سرعتشون اندازه نوره دیگه اونها هم به همین ترتیب همین ترتیبه چون میدونید که برای اولین بار که بشر تونست خواست به یک فاصله بزرگتر از چیز سفینه های سفینهای هم وویجر یک و وویجر دو هستن و سفینه مارینر این سفینه وویجر یک الان در حال حاضر تقریبا داره از منظومه شمسی خارج میشه منظورم اینه از اون کمربند پلوتو و کمربندی که در واقع ستاره های و اون دنبال ستاره های دنبال داره هستن این چیز حدود 8 میلیارد کیلومتر بله از خورشید فاصله میگیره حالا این ارقام رو من بنده عرض کردم که چقدر این هستی و این عالم در واقع گسترده هستش عرض می‌کنم که همین کهکشان راه شیری ما تازه همین کهکشان راه شیری ما در مقایسه با بسیاری از کهکشان ها کهکشان کوچیکیه بله جزو بله. کهکشان‌ها ابر کهکشان نیست. بل. یه ابر کهکشانی حدود یه هفته پیش تازه کشف فاصله است یک سمت تا سمتش یک و هزار سال نوری. یعنی 10 برابر کهکشان راه شیری بل. ما و نزدیک‌ترین کهکشان ما به ما کهکشان اندرومادا هستش که بل. از کهکشان راه شیری یک سد هشتاد هزار سال نوری در واقع فاصله هستش. اینا رو من عرض کردم که کره زمینی که ما توش زندگی می‌کنیم خیلی کوچیک هست در مقایسه با این هستی. و مای انسان من انسان که میشینیم اینجا برای خودمون خود غرور خود به خود دست میدیم مثلا ما فلان نژادیم فلان کسیم فلان کساییم در مقایسه با این عالم هستی هیچ چیزی ذره هم نیست ذره اصلا هیچ صفر اصلا سفینه همین سفینه وویجر دو به تازگی حالا این خیلی عجیب بود چون دو سه سالی بود که اصلا رابطه قطع شده بود ارتباط رادیویی قطع شده بود سفینه دو یک تصویری نشون داده از کره زمین یک نقطه بسیار کوچیک تازه همین آموخور منظوم شمسی رسیده یعنی بله. از اونجا دیگه همین هم دیده نمیشه در مقایسه ما در واقع ما هیچ نیستیم ولی باز هم تو همین منظوم شمسی ما تنهاییم تو همین کره زمینی که ما توش زندگی کره هایی دیگه واقعاً تا اونجایی که در واقع ستاره شناسان و سیار شناسان بهش رسیدن حیاتی که ما الان حیات دیگه بقیه کرات قابل تصور نیست حالا دلایلی که عرض خواهیم کرد که هستند حیاتی که به وجود اومده چرا به وجود اومده در منظومه ما یا خورشیدی ما یا در کل که نه کهکشان, منظومه ما. کهکشان بله در بله. منظومه ما مثلا ببینید شما میتونید بقیه تو همین کهکشان راه شیری ما کلی منظومه های دیگه میتونیم داشت و کشف شده. بنازم بله من شمسی بنده عرض میکنم بله میتونه در میان این 500 میلیارد ستاریه کهکشان راه شیری، یه ستاره شبیه خورشیدم میتونه به وجود بیاد و همین واسه یام سیاره هم میتونه به وجود این احتمال هست و احتمال هم هست. احتمالش هم خیلی بالاست. خیلی هم بالاست. بله. از به حضورتون که خب وقتی که, که کهکشان ها به وجود ما ستاره هم به وجود اومدن در فاصله و در عمر این ستارها یه سری کراتی به وجود اومدن که ما اسمشون رو میذاریم سیارات بیهواشوش وارد بشیم دیگه به قسمت مؤخر بعد بیام رو زمین دیگه بیام دیگه رو زمین همون بیاد رو زمین صف صف بیاد رو زمین سمت که اون بالا ممکنه بگی ملاج بمونید بس اگر شبات که بله یه چیزی شبیه اسم سیارات در منظومه شمسی ما دوتا تا کمربند داریم یک کمربند سیارات سفت یا جامد نزدیک به خورشید یک سری و سیاراتی داریم در گازی. کمربند گازی بله دور بر شما سیاراتی که جامد هستند و در نزدیک به خورشید هستند تا هستند که عطارد هستند زهره هستش کره زمین هستش و مریخ هستش از اونجا به بعد یعنی از فاصله 200 میلیون کیلومتر به بعد اون ذراتی که موقع شکل گیری سیارتون نتونستند یعنی این قابلیت رو پیدا نکردن که یک سیاری جامعه بتونن به وجود بیانی یه سری سیارات گازی به وجود بیانید مثل مشتری اورانوس، نپتون و پلوتو حالا پلوتو رو بعضیا سیاره هم نمیدونه حالا برقی ها ولی خب خصوصیاتی سیاره هم دار بین مشتری و مریخ یه کمربندی هست که بهش میگن کمربند سیارک ها احتمال یه احتمال داده میشه که احتمالا بین مریخ و مشتری یه سیاره هم بوده بله؟ مثل سیارات درون خورشیدی که سیارات جامد بودن و اون منفجر شده و این کمربند سیارک ها حاصل این در واقع اه کمربند اه سیارک ها هستش که یه چیزی بود سی 30 الی پنجاه هزار تا سیاره تو این م... چیز وجود داره که بسیار از حالت کوچیک تا بزرگ در این فرض اپ خیلی محتمله آقای دکتر چون ظریبی میان فاصله سیارهای منظومه ما بلد. وجود داره دو. شما وقتی که این ظریب رو در نظر بگیرین ظریب میان مریخ و مشتری دو برابر اون ظریبه دقیقا. بلد. یعنی یک مدار اونجا باید میبوده یه مداره یک یه... سیاری باید اونجا به وجود می اومده. و این سیارک ها بسیار هم سرگردان هستن برای سیارات دیگه کمی خطرناک هم هستن و به. تا حدودی برای کره زمین ما برخورد کردن از اندازه یک پیکان بگیر تا به اندازه 100 کیلومتری هم ما در واقع به اینها سیارک داریم البته در همون کمربند سیارات گازی شکلم چون سیارات هم یک سری کرات دیگه ای هم دارن که دور همین سیارات می‌گره اینا قمر میگیم اقمار میگیم بله که اون دو تا سیاره نزدیک کره زمین قمر ندارن اتارو و زهره قمر ندارن ولی کره زمین یه دونه که همین ماه هستش سیاره مریخ دو تا داره شکسوم شبیه شکل سیب زمینی هست فوبوس و دیموس بله که دور مریخ می‌چرخن و همچنین سیارات گازی شکل قمرهای زیادی دارن مثل همین زحل و مشتری که 15 پونزده تا زحل همون دو تا قمر داری که این قمره اتفاقا قمرها اتفاقا قمر بعضیش بعضن حالت جامدی هم دارن مثلا قمر اروپا و قمر گانیمت جان. جانیمت. جانیمت. جانیمت و باید. یو آیو. که این ها حتی برخیاشون یه سری فضیاتی هستش که اقیانوسی از آبی یا اقیانوسی از امونیاک در واقع داخل اینها باشه ولی هنوز سفینه‌ای که بتونه مثلا بره بر کف اینها بنشینه ما در واقع نداشتیم که به وجود بیاد در مورد کره زمین دیگه بیام یه باشو تو کره زمین دیگه بله البته این ماه ما آید دکتر یه چیز دیگه هستا بله بله تا ماه متا اون تفاوت از زمین تا آسمون دقیقاً بلده. بله, بله. خصوصا در مقایسه با قمرهای کرات دیگه در واقع فکر کنم فقط غنیمت از ماه بزرگتره حالا شاید نه شاید این مورد اشتباهه حتی تیتان هم که یکی از قمرهای سیاره زحل هستش اسکوریم ماه بزرگتر. الان هم از کوری ماه در واقع یعنی منظور اینه که نسبت به حجم کره زمین ما یک ماه خیلی بزرگی داریم. بله خیلی ماه بود و تاثیرات بسیار بسیار بود. خوبی در واقع داشته برای هم ماه هم مشتری رو پدید آمدن حیات روی زمین خیلی مؤثر بودن و حفظ حیات. بله دقیقاً حفظ حیات هم, هم اون قدرت جاذبه ای که مشتری داشته که زمین رو نگه داشته توی این مدار مدار درست مداری که در واقع بش حیات به وجود آورد. و خود کره ما هم در شم در حتی در حال حاضر در به وجود آمدن یک نوع تعادل بله در آب‌های کره زمین مثلا اقیانوس آرام اقیانوس اطلس خیلی نقش اساسی داره به بله بله. در به وجود آمدنش از بگذریتون که حالا در مورد حیات توی کره زمین نظریات مختلفی هست که این حیات اصلا کی شکل گرفت کی بوجود وجود اومد خود کره زمین که به این شکلی که ما داریم می‌بینیم حدود نزدیک 5 الی 6 میلیارد سال در واقع براش تاریخ در نظر میگیره ما اگه وارد این مسئله بشیم فکر کنم وقت برنامه اجازه نده بریم بخش سوم بله بله قسمت سوم برنامه اگه شما موافق باشین بله در این قسمت از شمن فرمان اگر صلاح بله بله می‌دونن که بله از شمن عزیز خدا کنیم بریم قسمت سوم. شرندگان گرامی قسمت دوم برنامه رخداد رو اینجا ما به پایان میرسونیم ازخواهی می‌کنیم که قسمت های مقدماتی برنامه خیلی طول میکشون ما مجبوریم روند منطقی در واقع حیات و همچنین به وجود اون دقلقه اصلی برنامه رو ذکر میکنیم بدا یارو میکردار